میدان اثر بزرگ علوی با صدای علی دنیوی ساروی تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوا با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه داستان اول چمدان یک صبح روز یکشنبه ماه تیر هوای شهر برلین تیره و خفه کننده بود آدم از فرت گرما در تخت خواب غلط میخورد عرق از تنش میجوشید اما حاضر نمیشد که از جایش بلند شود دود کارخانه ها و مه جنگل ها که با هم مخلوط میشد و ذرات آن که از میان پنجره توی اتاق میامد مثل این بود که میخواست پشاری را که بر تن و جان آدم وارد می‌آورد سخت تر کند. من در آن وقت در برلین تحسین می‌کردم. نیم ساعت بود که صاحبخانه چای مرا روی میز گذارده بود ولی من خیال بلند شدن نداشتم. یکی دو مرتبه هم از پشت در گفته بود: آقا از منزل پدرتان پای تلفن شما را میخواهند ولی من جواب نداده بودم. ساعت نو کسی با عجله در اتاق من را زد و داخل اتاق شد من ابتدا باز به گمان اینکه که صاحبخانه کاری دارد اعتنایی نکردم ولی بعد که ناگهان صدای پدرم را شنیدم از جا جسته سلام کردم او روی صندلی راحت کنار اتاق نشست قوطی سیگار طلایش را بیرون آورد سیگاری آتش زد و گفت چرا اتاق تو در هم و برهم است؟ چرا این کتابها را جمع نمی کنی؟ نگاه کن. صابون و قلم و شانه و کرابات و چوب سیگار و سربند و دیگر چی؟ عکس همه روی هم ریخته. بوی عطر که از صورت تازه تراشیده پدرم تراوش میکرد در نظر من زننده بود. راست میگفت. دقت و مواظبت او و غار و بزرگ او و را که از آبا و اجداد به ارس برده بود و غار آبی او با زندگانی مشبش پریشان من با دل چرکین من به هیچ وجه جور نمی آمد در خانه او یک قفسه مخصوص صابون، یکی مخصوص سیگار یک اتاق هم مخصوص کتاب بود امروز بیش از روزهای دیگر به پدرم توهین شد برای آن که پدر با خود را کوچک کرده و در منزل من آمده بود. مگر من آن پسری نیستم که پس از مدت ها زد و خورد از خانه او بیرون آمده بودم چون که میل نداشتم هر روز ساعت یک بعد از ظهر غذا بخورم و, و هر شب ساعت یازده در خانه باشم و بخوابم و صبح ساعت هفت سر میز چایی حاضر باشم. در زمینی که او سیگارش را میکشید، من سر و صورتم را شسته پهلویش نشستم از من پرسید تو خیال نداری تابستان مسافرتی بکنی نفهمیدم که منظور پدرم چه بود آیا میخواست بگوید مسافرت بکن یا اینکه با من مسافرت بکن برای اینکه به سؤال او صریحاً جوابی نداده باشم گفتم من پول ندارم شما کمی این ماه به من اضافه بدهید خوب بود که من اینجا آمدم اگر شما را نمی دیدم میکردم. چون می دانستم که از قرض کردن بدش میآید مخصوصاً مخصوصا به روخش کشیدم که با پولش به من سرکفت نزند پدرم پس از ای خاموشی این خاموشی این عادت زننده او برای من یک نو شکنجه بود. این حالت چشمهای سرخ و درشتش که میخواست اگر می مرا آتش بزند. این حالت چشم که آثار ظلم و اقتدار پدر عهد بربریت بود. برای من کشنده و ناگوار بود. پدرم پس از لحظه خاموشی دفتر چک بانک را از جیب بیرون آورد. و یک چک صد مارکی به من داد و گفت من مسافرت می کنم و میروم به اطراف سیتو به یکی از های سرحد چکسلواک اسمان را فراموش کردم ترن ساعت یازده حرکت میکند اگر میتوانی برو به خانه من و آنجا بنشین تا پسر صاحب خانه من چمدان مرا به ایستگاه ببرد اگر میخای خودت ساعت یازده با چمدان آنجا باش تا با هم مسافرت کنیم. بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم: بسیار خوب. چطور بسیار خوب؟ خودت میایی یا یعنی آنکه میده‌ای چمدان مرا ببرند؟ شما خودتان نمی نمیتوانید چمدانتان را ببرید. برق از چشمش پرید. اما به روی خودش نیاورد. همان طوری که عادت داشت با کمال خونسردی گفت: من قبلا جای دیگر کار دارم. الان ساعت نه هست. ساعت نه و نیم جایی کار دارم. بسیار خوب. من چایی میخورم. بعد میروم بانک و از آنجا میروم به خانه شما و آنجا هستم تا پسر صاحب خانه شما را به ایستگاه ببرد و برگردد. اگر بخوایی به بانک بروی دیگر دیر میشود. بدبختانه هیچ پول ندارم. خندش گرفت. من هم خنده کردم، ده مارک دیگر به من داد، من تشکر کردم، پدرم رفت کمی متأثر شدم، پدر من یادگار خوبی از دنیای گذشته بود، اما نه سر و صورتش، عطر او، کراوات او مال این دوره بود ولی افکارش، حتما باید ساعت یازده غذا بخورد و الا نظم و ترتیب زندگانی به هم میخورد به وقار لطمه وارد می آید، خانواده از میان میرود، اصول مقدس خانواده رو باید رعایت کرد. چه خوب است پسر و دختر و آدم همه دور هم جمع باشند، با هم بگویند و پدر بزرگ خانواده بالای اتاق بنشیند، فرمان بدهد، بیایند بروند. پدر خدای خانه است. درست انعکاس مذهب در خانواده و یا برعکس. درست دنیای گذشته. لباسم را پوشیدم و به راه افتادم. رنگ تیره خیابان‌های برلین، این حالت مخصوص این شهر در ماه اوت، آن هم یک تابستان خفه مرا داشت می‌کشت. آیا با پدرم به این ییلاگ بروم؟ این سر و صورت، این عطر بی‌خودی نیست. به سرحد چکسلاو می‌روید چطور است؟ من هم با او میروم اما نه چند روز پیش آن خانم روسی اسمش چه بود؟ کاتوشکا کاتوشکا اوسالوونا وقتی که از هم خدافی کردیم وقتی که دست سفید و باریک خود را آن انگشت های استخانی و کشیدهش را در دست من گذارده بود میگفت باز یک دیگر را ببینیم من میروم به سیتو شما هم بیایید آنجا شب پیش وقتی که آن صورت سفید و لاغر در دامن من بود وقتی که گونه های برجستش را به صورت من چسبانیده بود یک چیزهایی زمزمه میکرد تملق مرا میگفت نه تملق نبود در آن حالت نمیشد دروغ گفت و دروغ حس کرد چه میکرد؟ جنگ میانداخت و صرف های مرا میکند به من میگفت تو غیر از همه هستی؟ یک مرتبه در وسط خیابان شروع کردم به بلند خندیدن نگاه کردم دیدم بیش از یک ساعت بیخودی در خیابان راه رفتم از منزل پدرم هم گذشتم اتومبیلی رد میشد سوار شدم تکان ملایم اتومبیل مرا مثل بچه‌ای که در گهواره انداخته باشند به آرامی به خواب برد اما در خوابی که پر از حوادث گوناگون بود کاتوشکا اصالوفنا کجا می به سیتو به سیتو این اسم را امروز هم شنیدم اینجا همان محلی است که پدرم هم می روید. چطور است با پدرم می یعنی نه با پدرم میروم به سیتو برای دیدن کاتوشگا اصالوفنا اصلا خود این اسم آهنگ دارد کاتوشگا اصالوفنا اما می ارزد که آدم وقت خودش را با این روزها بگذراند با این روزهای مهاجر برای من چه چیزها تعریف میکرد از دوک، از پرنس، از دربار، از راسپوتین از تزار، از تولستوی، از سیبریه میدانست که من مخالف او هستم میدانست که من فقط لبهای او را دوست داشتم نه جواهراتی که در سینهش میدرخشید وقتی که من مخالف گفته های او را میگفتم انگشتش را روی لبهای من فشار میداد که من دیگر حرف نزنم. خوب میدانست که من به همه این حرف‌های او پشت پا زدم. میدانست که من گفته‌های او را دروغ می‌دانم و حقیقت را در پشت پرده کلمات او پیدا می‌کردم. ماهازا مرا دوست داشت و هنوز هم دوست دارد. یقین. شفر پرسید آقا کجا بروم؟ ساعت چند است؟ ساعت ده و نیم. برو اولاند شتراسه 28. تصمیم گرفتم به سیتو بروم اما به پدرم دیگر نمی رسیدم اول به خانه رفتم چمدان را توی اتومبیل گذاشتم از بانک پول گرفتم و با ماشین ساعت یک بعد از ظهر. به همان محلی که پدرم رفته بود با چمدانش حرکت کرد چون ماشین در گورلیت قریب یک ساعت توقف داشت طرفهای عصری وارد سیتو شدم و از آنجا با راه آهن به آن گیلاق رفتم چمدان را در ایستگاه گذاشتم در مهمانخانه‌های ییلاقی دو تا بیشتر در آنجا نبود سراغ کاتوشکا را گرفتم در مهمانخانی خانه سبز منزل داشت همانجا اتاقی برای خود گرفته منزل کردم کاتوشکا با مادرش و یک زن دیگر دو اتاق در خانه سبز داشتند. پس از ساعتی روی کارتم نوشتم. کتوشکای عزیزم، الان وارد شدم. میل دارم تو را ببینم. وقت و محل آن را معین کن. ف. زنگ زدم. پیش خدمت آمد. دختر نوزده ساله ای بود با زلف های بور و چشم های زاق. وقتی که کارت به دستش دادم لبخند زد و گفت آقا شما آقای فه نیستید؟ همین خانم چهار روز است که آمده و هر روز سراغ شما را گرفته است از شما چرا؟ آخر من خانم را دوست دارم سال پیش اینجا بودند به من یک کتاب بخشیدند چیزهای دیگری هم هست پرسیدم چه چیز دیگری هم هست؟ خانون یک رازهایی پهلوی من دارد اسم شما چیست؟ فریدل خب فریدل حالا من نمیگوید چه رازهایی دارد آنقدر اصراح نکنید بسیار خوب. میل ندارید نگوید دخترک که فکری کرد و گفت نه به شما میگویم چون میدانم که کاتوشکا خانوم فقط شما را دوست دارد. از روزی که کاتوشکا خانوم اینجا آمده است، هر روز سراغ شما را میگیرد. امروز یک آقایی آمد پیش خانوم. این آقا چند وقت پیش هم که خانم برای کرایه کردن خانه با مادرشان تشریف آورده بودند، همراهشان بود. اما خانوم او را دوست ندارد. به نظرم مجبوری است. اسری میگفت: "کی می شود آقای ف بیاید؟" من یک اسکناس دو مارکی از جیبم بیرون آورده یواشکی توی دست فریدل گذاردم بعد پرسیدم خب فریدل، این چجور آدمی هست؟ فالا، اینش را دیگر نمیدانم. من درست از نزدیک ندیدمش بسیار خوب فریدل، حالا بروید و این پاکت را به خانون برسانید اما طوری باشد که کسی نفهمد مثل این که آب سردی روی من ریختند خیال کردم از این مهمانخانه بروم به آنجایی که پدرم منزل دارد بالاخره همه زنها یکی هستند گریه آنها دروغ خنده آنها دروغ اگر کاتوشکا دروغ گوست پس همه زنها دروغگو هستند این چشمهای درخشنده چطور دروغ می‌گویند؟ اما مرا هم که این چشمها و اون گونه ها به دام کشیدند آن یک نفر هم بالاخره عاشق قشنگی است. گذشته از این. من چه مزیتی بر او دارم؟ چرا من بر او مزیت دارم؟ مرا ممکن است که واقعا دوست داشته باشد. اما به طور یقین پول او بیش از من است. از اینجا اولین سنگ اساس مقدس خانواده گذاشته می شود. خوب بود که پاکت را نمی دادم. حیف نیست که آدم خودش را سبک کند؟ بی خود کارت را فرستادم. اما چون این دخترک قضایی ها را مطلع بود دیگر کاری نمیشد کرد. فریدل برگشت. روی کارتی به اسم کاتوشکا و کاتوشکا چنین نوشته بود. مادرم میل دارد با تو آشنا شود و خواهش می که برای شام به ایوان ما بیایی. حالا دیگر باید لباس عوض کرد. باید مراسم ادب بجا آورد باید دست خانم والده را بوسید. من آمدم که فقط گناه های کاتوشکا را ببوسم، من میخواهم چشمهای او را ببینم چطور است. امشب عذر میخواهم، باید برمم پهلوی پدرم، قبلاً به او وقت دادم کاتوشکا و سالوبنا. این اسم را بلند گفتم، از دهنم پرید. در اتاق باز شد و کاتوشکا وارد اتاق من شد، به طرف من آمد و گفت: بالاخره آمدی؟ من هیچ امید نداشتم. آهنگ لطیف صدای او را که شنیدم، تمام آنچه کتابحال حال که به او فکر می کردم از یادم رفت. دستش را بوسیدم، او را روی صندلی راحتی نشانده گفتم: دیدی که آمدم. من روی لبه صندلی راحت نشسته، دست به گردن او انداخته بودم. او به من نگاه کرد و گفت: من هیچ امید نداشتم چرا؟ چرا؟ مگر من تو را نمی تو اصلا همیشه خواب میبینی تو هیچ وقت بیدار نیستی آنچه من الان به تو میگویم شاید اصلا نمی راست میگفت. من گلبوته های سرخ رنگی را که روی پیراهن سفیدش بود تماشا می کردم من از پشت گردن متناسبش که روی شال گردن سیاه رنگی انداخته بود لذت می بردم. من به مجاهای سیاهش که تقریبا تمام چشمهای او را پوشانده بود نگاه می کردم را نمی شنیدم برای اینکه خیلی معمولی بود. من چشمهایم را به چشمهایش دوخته بودم. بعد گفت من خودم آمدم اینجا از تو خواهش بکنم که دعوت مادرم را رد نکنی. از کجا می دانستی که من نمی آیم؟ کاتوشکا های چشمش را کمی توی هم برده گفت من می دانم که تو این تشریفات را دوست نداری خوب مرا شناخته بود از کجا مرا به این خوبی می شناسی؟ این سؤال من توهینی بود برای او این دختر زیاد احساساتی بود اما احساسات دروغ نداشت آیا چون این چیزی ممکن است؟ یا کمتر داشت تو خیال میکنی که ما یک ماه است با هم آشنا هستیم من از وقتی که خودم را میشناسم تو را هم میشناسم اولین دفعه تو را در کجا دیدم؟ در خواب بله در خواب شاید آن وقت پانزده ساله بودم من همیشه آشق ششمهای زاغ بودم مانند ششمای تو من همیشه موهای بور و سرد و دوست داشتم مانند زلفای تو یادت می آید در شب اولی که با هم آشنا شدیم چه گفتم؟ من آشق یک وهمی بودم و حالا می بینم که آن وهم در تو در افکار پریشان تو در زندگانی تو در روح ناراحت تو جلوه شده است تو که از زندگی من خبر داری شما مردمان مخصوصی هستید من خوب میدانم که تو همیشه مرا دوست نخواهی داشت. موجیست میآید و بعد می رود. موج می رود. اما آب سر جای خود هست. تو مرا فراموش میکنی اینطور این کار نیست. اما من فراموش نمی کنم. من به آرزوی خودم رسیدم. زندگانی من به در نرفته است. تا به حال به عشق این وهم زندگانی می کردم. از این به بعد هم به یاد این روزها زندگی خواهم کرد. تو که نمیتوانی شوهر من بشوی، تو چطور میتوانی عمری با من به سر ببری؟ اما آن دقیقه که من با تو هستم، آن دقیقه، گریهش گرفت. من باید بالاخره زندگانی بکنم، باید شوهر بکنم. حالا مطلب را فهمیدم. آن مردی که تازگی با او آشنایی پیدا کرده است شاید باید شوهر او بشود شاید اگر کاتوشکا خودش می توانست و عوامل دیگر او را مجبور نمی با من زندگی می کرد بدون اینکه زن من بشود حالا نه پدر و نه مادر هیچ کس او را مجبور نمی کرد، اما یک دیو منحوس مندرس مهیب، پول جامعه محیط او را مجبور می کرد که برود خودش را بفروشد برای یک عمر بفروشد برای اینکه بتواند فقط زندگانی کند. زنها همه خود را میفروشند بعضی در مقابل یک پول جزئی برای ساعت و روز بعضی دیگر برای یک عمر در مقابل تأمین زندگی گریه نکن کاتوشکا، حالا میفهمی چرا از دنیای او بیزارم نفهمید چه میگویم از من پرسید کی تو را ببینم من گفتم بعد از شام می توانیم کمی گردش برویم بسیار خوب بعد از شام شام با مادر کاتوشکا و آن خانم دیگر روی هم رفته کسل کننده بود. بعد از شام، من و کاتوشکا با هم به گردش رفتیم. بیش از نیم ساعت راه رفتیم و تاریک بود. از میان جنگل‌های درخت سرو آهسته می‌گذشتیم. ابر نازکی آسمان را کبوتر رنگ کرده بود. راه ها خلوت و خاری از صدا بود. از دور او او سگ های دهاتی ها به گوش می رسید کاتوشکا یک شعر روسی زمزمه میکرد من گوش میدادم نیم ساعتی گذشت روی تپهای در میان جنگل چهارچوبی کار گذارده بودند کاتوشکا خسته شده بود من پرسیدم میخوایی کمی اینجا بنشینیم؟ بد نیست برویم بالای چارچوب میترسم بیفتم نه ترس تو را میگیرم اینجا هوا گرفته است آن بالا هوا بهتر است چهارچوب پنج پله داشت پایش را که روی پله اول گذاشت چهارچوب صدای ترقی کرد بعد به کمک من بالا رفت دور ما را درخت های سیاه رنگ اعاطه کرده بودند سر درختها مثل موج آب تکان می‌خورد. خورد باز سمسمه کرد روسی میخواند ملایم اما با روح دستش را در دستم گرفتم کتوشکا عوض اینکه جوابی بدهد سرش را روی شانه من گذارد چه خوب بود که این خاموشی زود شکسته نشود بعد از مدتی از من پرسید چطور شد که تو اینجا آمدی؟ اولا که به تو وعده داده بودم حرف مرا قدرد کرد سانیان سانیان که پدرم آمده است اینجا من هم آمدم پس چرا تا به حال نگفتی گفتن نداشت تو آنقدر به پدر و مادرت عقیده داری میدانی من برخلاف تو فکر میکنم در همه چیز مرا با او آشنا کن خجالت میکشی چرا خجالت بکشم؟ من میل ندارم. اگر تو میل داری فردا. صورتش را در سینه من پنهان کرد. او گفت فردا می شود. چرا فردا می شود؟ هر دو دستش را به گردن من آویخت. مرا بوسید و گریه کرد. من دستهای او را از گردن خودم باز کردم. با هر دو دست گناه را گرفتم نگاهی در تاریکی به چشمهایش انداختم و گفتم گریه نکن کاتوشکا من میدانم حرفهای امروز تو را فهمیدم دنیای تو همینطور است من هم تو را دوست میدارم من آنقدر تو را دوست دارم که نمیتوانم تو را بخرم بهترین است که همین وهم برای ما بماند این وهم بد نیست به آدم دلداری میدهد به آدم جرأت و امیدواری میدهد آن کس که تازه آشنا شده ای می خواهی به گردش بروی بسیار خوب ما فردا شب هم دیگر را میبینیم تصور نکن که من فردا با او تنها هستم مادرم همراه ماست فردا شب هم در مهمانخانی اسب سفید مهمان او هستیم بیا فردا شب او را به تو معرفی میکنم اگر مرا دوست داری عقیده خودت را درباره او به من بگو. بسیار خوب، کاتوشگاه فردا میروم به سراغ پدرم و فردا شب در مهمانخانی به سفید هستم. دیگر حرفی نزدیم. کم کم ماه درآمد. دیر وقت شد. از روی چارچوب پایین آمدیم. مرغانی که نور ماه آنها را مست کرده بود، با هم راز و نیاز می کردند ما سرودهای های آنها را میشنیدیم و لذت می بردیم ساعت یازده بود که من به اتاق خود رفتم فریدل را صدا زدم شراب برای من آورد پس از مدتی آواز گرامافون از اتاق همسایه بلند شد من مدتی شراب خوردم و سیگار کشیدم روز بعد ساعت نه از اتاق خوابم بیرون آمدم ابتدا کمی در سرسرا قدم زدم فریدل دستمال سفید به سرش بسته بود و در اتاقها کار می کرد. به من گفت کاتوشکا و مادرش و آن خانم دیگر به گردش رفتند آن وقت به ایستگاه راه آهن رفتم از آنجا با چمدان پدرم در یک کارالسکه نشسته و به مهمان خانه پدرم که همان اسب سفید بود رفتم. از مهمانخانه ما تا آنجا غریب نیم ساعت راه بود. ساعت ده و نیم با آنجا رسیدم اما پدرم نبود. گفتند که صبح زود رفته است. من چمدان را پیش صاحب مهمانخانه امانت گذاشتم و رفتم. از این ده به آن ده غروب که به مهمانخانی خانه سبز رسیدم، کاتوشکا نبود. فریدل باز آمد. امشب برخلاف همیشه لباس قشنگی تنش بود. آقا، خانوم ها آمدند و رفتند. فریدل، امشب خودتان رو قشنگ کرده اید. بله، امشب من مرخصی دارم و با نامزدم میروم به رقص. شام را خوردم و پیاده به مهمانخانی پدرم رفتم. ساعت نه آنجا رسیدم. در اتاق پدرم که رفتم گفتن در سالن پایین است. از پله ها پایین آمدم. در را که باز کردم دیدم کاتوشکا پهلوی پدرم نشسته است. پیش خدمت داشت های شراب را بر می داشت و تازه می گذاشت. پدرم صورتش رو از ته تراشیده بود کاتوشکا لباس آبی رنگ تنش بود قشنگ تر از همیشه به نظرم آمد فوری بیرون آمدم روی کارتم چیزی به کاتوشکا نوشتم و به پیش خدمت دادم که به او بدهد کاتوشکای عزیزم از من کاهش کرده بودی که پدرم را به تو معرفی کنم همان است که سر میز تو دستش چپ تو نشسته است از من کاهش کرده بودی که عقید را راجع به شوهر تازه که میخوای انتخاب کنی بگویم. بسیار خوب شوهری است. تو را خوشبخت می کند. فه. به صاحب مهمان خانه گفتم: چمدان مالان مردی است که بروییان خانم نشسته است.